رو چه فعالیت‌های متمرکز بشه برای افزایش درآمد؟ یا روچه فعالیت فعالیت‌های متمرکز بشه برای کاهش هزینه؟ آی پورتر یه مدلی داره به نام مدل چرخی ارزش که بعضا بهش میگن مدل چرخی ارزش پورتر. خب؟ ویلی چین آنالیزیس پورتر. بیگ داستان این چیه آی پورتر میگه اگر سازمان ها یا درآمد افزایش بدن یا هزینه رو کاهش بدن روی نه فعالیت در سطح سازمان باید متمرکز بشن خب و روی این نه فعالیت کار کنند که یا درآمد رو ببرن بالا یا هزینه ها رو کاهش بدن که اینو آورده در قالب چرخه‌ی ارزش پورتر فرصت میگید یا یعنی یکی از این دو تا یا یا جفتش با هم فرقی نمیکنه حالا میگم الان بحث میکنه چرخه ارزش پرتر چیه این مدل یک مدل فولاد فو معروفه چرخه ارزش پرتر خب درآمد هزینه خب یعنی اگر شما بخوای رو درآمد هزینه به درآمد بالاتر متوجه اسید و هزینه پایین تر برسید رو نه فعالیت باید متمرکز بشید که پورتر اومده میگه این فعالیت چیه؟ فعالیت اول یا فرایند اول زیرساخت فعالیت دوم تکنولوژی فعالیت سوم منابع انسانی فعالیت چهار رو خرید خب؟ این چار فعالیت، اگه میخواید درامنت رو ببری بالا هزینه بیاره پایین بیار و زیر ساختت متمرکز شد تکنولوژی منابع انسانی خرید این چهار فعالیت تو پرت بهش میگه فعالیت ثانویه خب؟ علا ببرین چهار فعالیت، پنج فعالیت دیگه هست خب فعالیت پنجم فعالیت پنجم لوجستیک روب داخل یعنی نحوه تعمین مواد و متریال از صرف تعمین کننده به سمت سازمان خب در مدیریت نه شاید چیز گفت باشه شاید دیگه شوان بلیه رو خوندید قبلا ای خوندید خیلی خوبه به نظرم خونده لوجستیک رو به داخل یعنی نحوه تعمیل مواد و متریال از سمت تعمیل کننده به سمت سازمان تولید روی تولیده کنت مرکز بشو لوجستیک رو به خارج یعنی نحوه حمل محصول متوجه هستید به سمت مشتریان بازاریابی خدمات پس از فروش یعنی پیاده سازی استراتژی های تجاری متوجه هستید روی این فرایند امکان پذیره اگه میخوای یاد درآمدت تو ببری بالا یا هزینه رو کاهش بدی. متوجه بعض بررسید که این پنج فعالیت رو بهش میگم فعالیت های اولیه یا اصلی درسته پس اون فعالیت شد زیرساخت، تکنولوژی منابع انسانی خرید لجستیک رو به داخل پولین لوجستیک رو به خارج بازاریای خدمات پس از فروش 25. عالیت‌های که اونه اینکه مولا هزینه‌هاست فرق نیمیکنن، چه تو دمامن ها بخوایی کاهش بدی؟ چه هزین، افزایش ده. بدی؟ چه هزینه را بخوایی کاهش بدی؟ روی این نوع فرایند باید متمرکز بشی؟ این من دارم جواب سوال ما قبل از بریک خدمت‌تون میگه قبل از بریک پرسیم رو کدوم فرایند‌ها، عالیت رو شما می‌خوایی متمرکز بشی؟ ده. که دو سعیزه ما با بنابرا چلو. یعنی رو به داخل و خارج و میدم. لجستیک رو به داخل نحوه حمل مواد اولیه از سمت تأمین کننده به سازمان. اوکی؟ لوجستیک رو به خارج نحوه حمل محصول نهایی به سمت مشتری. لجستیکی که من گفتم میشه لوجستیک رو به خارج. جان مثال گفتم چه مثلا واسه حمل و نقل آره اونش لجستیک لازکر... رو به خارج جونم حمل محصول نهایی به مشتری به مشتری خارج میشه بله بله بله خب متوجه داستان چیه حالا داستانی که اینجا وجود داره پس ما رو نه فرآیند یا فعالیت باید متمرکز بشیم اگر بخوایم در حقیقت آه افزایش درآمد یا کاهش ها رو در سازمان داشته باش. اوکی. دقت کنید که اینو ما بهش میگیم چرخه‌ی ارزش پورتر یا ولیو چین پورتر. پاک کنم این از رو؟ yes. سوالی هست؟ زیرساخت so, چی میشه؟ <تصفح> زیرساخت میشه زمین، ساختمان، خب؟ خرید، تجهیزات میاد زیرساخت میشه، تکنولوژی یعنی ابزارهایی که شما در سازمانت دارید خرید، نحوه خرید مواد اولی از سمت تنمیم کنندگاه تنمیم کنندگاه میشه بگی دیگه, دیگه, دیگه خرید دیگه، نه خرید, <تصفح> خرید نحوه خریدت دیگه خیلی خب، پاک کنم این <تصفح> تولید چیه؟ عملیات تولید. تولید. عملی الان شما تو شین فروشی یه فرایند تولید داری، یه فرایند خرید مواد اولی در خرید داری، درسته؟ منو انسانی داری، تکنولوژی داری، زیرساخت داری، نهفته همین مواد اولی نهفته حمل محصول نهایی دست مشتری بازاریابی خدمات پس از فروش. اینو فرایند در تمامی سازمان آبی که بده همه سازمانها به شکل روشی نو فرایند دارند. آره. اصلی و اولویتی داشته نه، نه، تقسیم بندیه اینا را جنوز فرایلت اصلی شناسای کرده، اینا جنوز فرایلتی پشتیبانی خب این ماتروس که من میکشم را بکشید و داشته باشه، تو هیچ کتابی نیستش اینا واقعیت دارم میگه حالا از کلاشن الگوی نیست من اینا رو سر کلاس به صورت تفسیری توضیح میدم <تصفيق> خیلی خوب اولین استراتژی پورتر چی بودش تمایز دیگه ها تمایز یا تمایز قانونی دومین استراتژی بود رهبری هزینه یا رهبری هزینه قانونی سومین چی بوده؟ تلفیقی درسته بریم رهبری هزینه ابتدا رهبری هزینه این ماتریس یه قسمتش چرخه عرضشه یه قسمتش استراتژی پورتره درسته؟ اولیش چی میشه؟ رهبریه هزینه یا رهبری هزینه کانونی اوکی؟ فعالیت رو به من بگید زیر ساخت تکنولوژی با. با. تکنولوژی منابع انسانی خرید لوجستیکه رو داخل عملیات لجستیکه رو خارج درسته؟ عملیات مشخصه تولید دیگه تولید بازاریابی خدمات از، یا رهبری حزینه کانونی برای کاهش حزینه هاست می‌ده من دنباره چی هستم؟ اگر شما بخواید کاهش هزینه ها رو در سازمانتون داشته باشید متوجه هستی؟ رو چه فعالیت‌های به چه صورت باید متمرکز بشید؟ رو چه فعالیت‌های به چه صورت باید متمرکز بشید؟ اول زیرزاخت درسته؟ کاهش حزینه ها چی بود؟ استاد اینو پرمیدین؟ ببینید، رهبری حزینه یا رهبری حزینه قانونی برای چیه؟ برای کاهش حزینه هاست وقتی ما بگیم کاهش حزینه در سازمان یعنی اینکه فعالیت هایی به چه صورتی، اینه دقت کنید متمرکز باشید، که کاهش حزینه ها رو داشته باشید میتونید الان شما به من کمک کنید، بریم ما هم یه بست رو لاب اندازید من مونولوک به ش مثلا تو قضیه زیر سخت ما فقط می‌گیم ساخت. ما چه کار می‌تونیم بکنیم که کاهش هزینه داشته باشه؟ تاسکویی که الان دیگه فرسوده شدن و اون همون... میره تو تولید و تکنولوژی. دیگه رو زیرساخت چیکار می‌تونیم بکنیم؟ استفاده از نیروی متخصص. ما بتونیم زمینی رو در نظر بگیریم که آیندهش آینده توش اما تعریف زیرساخت رو به من بگیم زیرساخت یعنی چی؟ infrastructure زیرساخت یعنی چی؟ آم میتونیم جایی در نظر بیم که خیلی <تصفيق> برام توی او برگازی اینا فاسبه نداریم زیرساخت زیرساخت یک سازمان یعنی میدونین ساختار یک سازمان زیرساخت یک سازمان یعنی ارتباطات درون سازمان زیرساخت یک سازمان یعنی متودولوژی یک سازمان و و و و, و الی آخر تجهیزات که شما دارید میگید این میره تو قسمت تکنولوژی دانش سازمانی یا مثلا دانش سازمان اینا همه میاد تو زیرساخت سازمان حالا ما تو زیرساخت سازمان چی کار میتونیم بکنیم که حزینه ها بیاد پای؟ مثالی یه دن شما کردم گفتن ما بریم جایی ساخت زمین بگیریم برای ساختنون که آب و براغاز برای سرش باشه خب؟ که دیگه هزینه انتقال نداشته بشی خب صد هست و تو تولیدی بگونجم تو عملیات دقت کنید مواردی که من منیمیسم موارد استاندارده خب اگر کاهش هزینه تو زیر ساخته میخوایید داشته باشی؟ اولین روش سیستم امایسه امایس یعنی چی؟ برم تو فضای شوخی؟ یه آیتی ها چی میدونم؟ و نه دوستان MIS میشه Management Information System سیستم های اطلاعات مدیریت میدونی یعنی چی؟ یعنی که سازمان رو ببری به سمت پیپرلست شدن یعنی ببری به اون سمتی که داکیومنت سازی یا مدرک سازی یا کاغذبازی تو سیستمت به حد اقل برسه الان چی میشه MIS؟ میشه Management Information سیستم سیستم اطلاعات مدیریت بروکراسی داری هست بشه خب نکته دوم نکته دوم سیستم مکانیک مازلاد میخوام به مرشیت سیستم ارگانیک سیستم ارگانیک یعنی چی؟ بیشتر ما تو مدیریت خدمت رو توضیح داریم بیشتر رو ها? عفت‌پرین تو, تو مدیریت خدمت رو توضیح داریم یعنی بیوروکراسی سازمان کاهش دیلیگیشن. پیدا بکنه ارتباطات ساده‌تر بشه خب. وقتی ارتباطات ساده‌تر بشه بیوروکراسی در سطح سازمان کاهش پیدا بکنه و به عبارت دیگه سازمان مستتخت‌تر بشه ما این سیستم رو بهش میگیم سیستم ارگانیک پیاده سازی سیستم ارگانیک در سطح یک سازمان یعنی کاهش رنزی. یعنی بیوروکراسی بیاری پایین سلسل مراتب رو بیاری پایین پس در سطح سازمان بهتر اتفاق بیفته راحت‌تر اتفاق بیفته بعدی ساده کردن سیستم برنامه‌ریزی. ساده کردن سیستم برنامه‌ریزی. ریزی باید رو بهتون بکنم ببین، <تصفيق> وسترنا، آمریکایی ها مثلا ساده برنامه‌ریزی ریزی میکنن ساده تصویر میدیدن فکر کنید مثل ما ایرانی هستن، 400 ست تو جلسه اصلا این معنیه 400 چهار ست تو جلسه مگه ما ایرانی هستن که مثلا سند استراتژیک هزار سفری داشته باشن؟ به خدا اینجوری نیستم. من با باتیسنو بهتون نشونش این سند استراتژیک باتیسنو بود با اون حجم ترنور یه پاورپوینت ساده. خب خیلی ساده ببینید روش کار اینا چجوریه؟ خیلی ساده. آخه قرار جلسه بذارن 10 دقیقه یه رو نیم ساعت. اصلا ممکنه جلسه شون هم سرپایی باشه. تسلیم گیری میشه، میرن اشا تو سازمانشون دستوری اگه قرار داده بشه، به شبهر رو یک کاغذ می مثلا مدیر رو یک کاغذ می میده به پرسونلش، چونکه برای کار انجام بده خب، حالا در ایران چجوریه؟ ج... بسم ای تعالا خب، جناب آقای مهندس بلانی، مدیر محترم بازاری بعد یه نامه می نمیسته، بعد پنجه رو نوش میزنه خب، اینو بهش میگن حضیره تو اگه سازمانی میخواد دنبال کاهش حزینه باشه، سیستم برنامه بعد رو باید ساده بکنه فرهنگ ما ایرانی‌ها جلسه، پشت جلسه متوجه هستی؟ جلسات مدت خب، صورت جلسات آنچنانیم ولی خروجی صفر خب، اگه با قرار خروجی نداشته باشی، خب چون دیگه جلسه می‌زنیم سر پایی هم خیلی نکات رو می‌تونیم بگیم که بره اجرابه بشه دیگه اینو ما بهش میدیم ساده کردن سیستم برنامه ریزی خیلی راحت کار کنید. خیلی پیچیده کار نکنیم اگه دنبال کارش هزینه تو زیر ساختیم درسته؟ این سه تا مثال اصلی و کلیدی بریم سراغ تکنولوژی استفاده از تجهیزات پیشرفته دوستان استفاده از تجهیزات پیشرفته باعث کارش هزینه‌ها ها تو سازمان میشه هرچقدر شما تجهیزات سازمان تو پیشرفته و پیشرفته تر باشه حزینه پیدا میکنه انگلیسی‌ها یه جمله خیلی قشنگی دارن میگن ما هنوز اونقدر پولدار نشدیم به جنس ارزان خب یعنی شما این متدولوژی رو تو سازمان رو داشته باشی اگر دنبال کاهش هزینه هستی یک واقعیت من بهش رسیدم یا یه کار انجام نده یا یه خریدی رو انجام نده بده اگه یه کار انجام بدی یا خریدی رو انجام بدی بهترینش رو انجام بده بهترینش رو انجام بده این میشه سیستم تکنولوژی کاهش هزینه در حالت با تکنولوژی استفاده از تجهیزات پیشرفته. منابع انسانی مورد جان؟ چی میگه؟ <تصفيق> کاهش کاهش استعفا در سطح سازمان افزایش آموزش‌های اثر بخش یه براتون هم برای تون بخونم، حیف هم حالا شاید زیاد هم رفت نداشته باشه، با این از بیرفت هم نیست بیل گیتس میگه من همیشه آدم های رو برای کارهای سخت انتخاب میکنم چون اونا راحت‌ترین راه رو را برای انجامش پیدا میکنم <تصفح> آه؟ راحت ترین را برای انجامش پیدا، آدمان تنبهر همیشه راحت ترین را برای انجامش پیدا می‌کنن anyway, اینیوی بیرانی آره، منابع انسانی، کاهش استفا، افزایش استفا تو سازمان سم کشنده است سم کشنده است این چی، کاه کاهش استفا، ببین؟ من یک دیگه هم اضافه کنم اینجا یکی دیگه هست، کاهش کاهش استفا تقریب در نه، نه، نه، بابا کاهش استفا و اخراج اخراج هم کاهش بود ببین ببین، یه بحثی وجود داره ببین من درد دردو دارم خب؟ اتفاق؟ به تو سعی هم توضیح میدادم سه روز پیش من تو دفترم نشسته بودم ساعت 3:30 بود تو ابونم خودم بود. خب این تلفون زنگ زد از طرف اون مش بود. آقا دکتر آقا سخی از لوردستی میخا شماره ببینن. حالا من استیل رو میشناختم. تایزم شنیده بودم. بالاخره فاکتورا رو که امضا می, می بینم. مثلا اسم تامین کنند سخی من با دویست تامین کننده با کار مکن. خواهر از تو گفتم بگی دیدم دیدم درواه شد. یه پسر سی و دو ساله خب، با سه تا شرفر والا دیدم شد یعنی من نه. من تا رو شرفر ندیده ببین، صورت چاق خورده، متوجه کل ال... سه تا دو تاشو باسه هم در مدل دفتر این با یکیشون اومد داخل گفتم جانم گوه های من 17 میلیون تو هم بده کار چیست طلبکارم؟ متریال به شما فروختم 17 ملیتم گفتم چه؟ گفت دو ماه پیش گفتم خب الان پول منو بده <تصحيح> خب؟ گفت <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> خاک پاتم هستم مخلصتم هستم الان پول منو بده حالا کاری نداریم، خرش کردیم رفت خب؟ بعد من مونشی رو صدا کردم گفت آنگاه آخه تو شعور نداری یعنی من دیگه گفت گفته من چه کار میکردم گفت عزیز من این نشون میده که تو مریضی مریضی، بیماری تو نمیتونستی بگی اینجا گفت آقای فلانی میاد بعد پشت زر زن بزن دکتر چون تو برسه به من سه دقیقه، چهار دقیقه طول میکشه یه نفر مرددار باشن، اینه نمیتونست بگیر لالی برو بیرون برو بیرون یعنی برای نیروی انسانی، آره رو احساب آدمگاهی اوقات میره یعنی دیوانه آدمو میکنن خب؟ بب... حالا اینکه شما بهش چی گفتین که اون رفته با اون ستا، اون مهمه خلی تو بازاشتی رو میزی ها بازالا اون سفرونه نه نه هستم ۱۹ ملیون رو بخش نه، اصلا حرکتت جالب نبود حرکتت جالب نبود، بمانم حالا این بحث من میخواستم به شما بکنم ببینید وقتی که استعفا تو سازمان شما میره بالا یا شما اخراج میکنیم استخدامت درست نبوده خب؟ من به یک قضیهی رسیدم آقا، استخدام نکن ولی آدم درست رو استخدام چون اگر استخدام بکنی بعد یا اخراج بکنی یا طرف استعفا بده این برای سازمان وحشتناک هزینه داره دیوان کننده هزینه داره خب بار روانی داره سازمان تو مسموم می‌کنه ما یه نیروی اخراج کردیم یه ما پشت دی کردیم خب شانس هم ما نداریم نمیدونم چه جوری بدشانس این وقته شرکت رقیب بهش پیشنهاد کار دادن با یکنیم برابر حقوق که ما بهش میدادیم خب، لامصابان برمیدارن، به همه ذهن میزنن میگه همونتان فلا شکرم، من استخدام که یکنیم برابر الان یه حسی به حوشتون بده تو سازمان باید. که ما داریم حقوق کم بیریم بدیم شکلت لنگیم ببین یه همچین ساید افکته رو برای سازمان داره اینا هزینه های پنهانه که واقعا میزنه سازمان رو میپکون سازمان میزنه میپکونه من اگه این که کاهش استفاده یا اخراج یعنی ببین، یه بخشی از های پورته میگه ترنوبر کاست اسمش هست ترنوبر کاست یعنی یه ترنوبر کاست دار تو کاهش بده هزینه های رفته آمده تو کاهش بده حالا ببین یه نیروی که استفاده میکنه میره یا تو اخراجش میکنه میره دوباره نیروی جدید بخوایی بگیریم هزینه داره دیگه تا بخوای جا برای ا پس آبا بهتر این نگیری، استفدام نکن، ولی اگه میکنی، درستش رو استفدام بکن افزایش آموزش های اثر بخش، از آموزش در سازمان ها تو قفلت نکنید آموزش باعث کاهش هزینه میشه و معمولا مشکلات زایهات، دوباره کاری که تو سازمان های اتفاق میافته به خاطر که پرسنل لقش جلبک رو اینجا بازی میکنن چون آموزش ندیدن خطا میکنن و این خطاها برای سازمان هزینه داره اوکی خرید خرید ارزان ولی با کیفیت خرید ارزان ولی با کیفیت ارتباط با تامین کنندگان ارتباط با تامین کنندگان درسته؟ دقت کنید و همیشه به تدارکات میگم میگم شما سه تا هدف رو باید برسید خریدتون با کیفیت باشه یعنی که که آشغال آشخال کنی. ارزان باشه و اعتباری ارزان با کیفیت و اعتباری حالا من اعتباریشو اینجا ننوشتم ولی خرید ارزان و با کیفیت ولی آیه آی این از طریقه ارتباط با تامین کنندگان محقق میشه من باید یک کاری رو انجام بدهم که استارکش شم زدم من ماهی یکی دو بار میرم بازار با بازاریا میشینم صحبت میکنم متوجه ای؟ باشون صحبت میکنم قیمت ازشون میگیرم متوجه این ارتباطه باعث میشه قیمت بیاد پایین اگه فقط مسئول تدارکات من، نفر خرید من برای ارتباط با تن میکنم در رو بزنه معلوم نیست اون وصل چقدر میکنه، یک دو تو اطلاعاتت کامل نیست که بتونی چجوری اونو کنترلش بکنی دانش کامل هستی بتونی اونو کنترلش کنی و عملت با این رندشی که خودت وارد مذاکره نه حالا به صورت مستمر را به صورت رندو وارد مذاکره با تامین کننده میشه هزینه رو میاری قیمت رو میگی خیلی میتونه کارش بده جونم اصلا این دو ما رستوران داره تو رستوران خودش 1 ه... تن برنجو 800 کیلوایه نفر میخره یه 100 کیلوایه نفر 100 کیلوایه نفر, نفر سوم چرا کارو میکنه به خاطر اینکه با اون دو نفر دیگه همیشه قیمتا رو داره فیکس میکنه نه اصلا توسعه تامین کننده بده آره توسعه تامین کننده توسعه تامین کننده بده. بده ببین یکی از راههایی که شما قیمتا میتونید بیارید طایری که توسعه بده تامین کنندگاراتون هیچوقت انحساری از یک نفر خرید نکنید یا از یک نفر یه بار خرید که 9 بار تا قیمت خوب میده بار دهم هیچ فجالت در میاد اون 9 بار دیگه رو قشنگ برات کاور میکنه اینو مطمئن باشید توسعه بدید تعمیم کنندگانتون رو که من زرم ارتباط با تامین کننده اوکی؟ لوجستیک رو به داخل نزدیک بودن به تعمین کنندگان نزدیک بودن به تامین کنندگان از نظر مسافتی شما نزدیک باشی به تامین کنندگاره که قرار مواد متریال رو به شما بدن خیلی مهمه ها دور بودن به تامین کننده هزار جوری داستان برای شما ایجاد می‌کنه اگر از موادش رازی نباشی ارتباط سخت میشه اونها اگه قرار مواد و متریال رو برای شما بفرسته هزینه حمل و نقلش کاهش پیدا می‌کنه برای بالاتر آخر تو قسمت عملیات و تولید اقتصادی سری. خاله دختر یعنی چی؟ به وایربی یعنی چی؟ بعد وری باید داشته باشه. نه کاملا باشه. بعد بعدی بالا یعنی چی بحره برای بالا؟ مواد از حد مواد اولیه حد تولید تولید رو دیگه هم نیروش هم همین اگر شما بتونید اضافه کاری رو تو سیستمت حذف بکنی متوجهی؟ اضافه کاری رو تو سیستمت حصف بکنی حصف اضافه کاری؟ یعنی حصف بیکاری های نهان در سیستم متوجه هستی؟ اگه این کار رو بتونی بکنه خیلی تحصیل میذاره مخلص کلام رو تولید اقتصالی و وری بالا یه مثال برای تو یه مورد بهتون بگم میکرد دوستان یه نصیحتی رو به من کرده خب من نمیتونم نصیحتشو رو اجرایی بکنم امکان پذیر نیست دکتر تو شبا چه ساعتی میری خونه؟ <تصفيق> گفتم نه شب ده شب یازده شب این واقعیت ها مثلا کارخونه که من باشم نه شب از کارخونه میزنم بیرون؟ دفتر مرکزی هم باشم نهیم ده شب میزنم مییرون دهمون میزنم بیرون. گفت این اشتباه گفتم چرا اشتباه؟ اون وقتی تو ما مدیر مدیرعامل که از ساعت ده شب تا ده شب میمونی سازمان چه ا کارم داری؟ اصلا ما می کارم داری؟ خب؟ یه سری از نیروها روشو نمی‌شه زود تر استو برانخود. <تصفيق> میدونن چه درام میگم؟ نمیتونن اصلا برن. اینا مجبورن بمونن. چه واسه کارم نداشته باشن. ولی چون دو تا صد تا این شب بوده اونها ماجرا تسا تا شب بمونن. دیدا راست میگه این قضیه. شما اگر بتونید تو سیستمه بگی آقا ساعت کار 8 صبح تا 5 اصلا ما اضافه کاری نداریم. این اشتباه محض. ببین شرکت های باز خارجی به خدا اضافه کاری تو فلسفه اضافه کاری ندارد. یعنی دو شیفت نذرا اصلا دو شیفت چنین شیف دو شیفت ممکنه داشته باشن دو مثل شیفت دوم مثلا شیفت یک اون 800 کاره میگه آقا من 84400 کار هستم میخوام آ مدلو بازاریا در هفته نه 100 نه ساعت نه 200 ساعت 44 ساعت کار برم بعد به اه اهداف برسم برم بعد به اه اهداف برسم کاهش اضافه کاری در سیستم وحشتنات راندمانه میبر بالا یا حد درقدیش من به شما بگم اضافه کاری در سازمان باید مدیریت بشه اگه نیروی هستا داشته باشه بگم آقا شب هشت شب نون شب, شب میبونم حالا صبح اگه کاری رو میتونه انجام بده بیدهش اصلی انجام میدن بیدهش کن، زور انجام نه بیدهش شب انجام میدن این یعنی که شما تولید اقتصادی در سازمانت نداری یا نمیتونی داشته باشی. فقط ضوابق کلیو هزینهش اش برای کارفرمان در ساعت خیلی زیاده. ساعت. زیاده. زیاده, زیاده یک و 4 دهم 1 و 4 دهم یعنی 1 و 4 دهم چهل درصد 40 درصد اضافه تر بده ساعت 8000 تومان بود بجز چهل درصد بیشتر چهل درصد بیشتر روی تعطیلات 60 درصد است کردم یعنی بهره بالا تولید اقتصادی یعنی بهره بالا شورای ربیعت تو خال دیگه یعنی بالا این یعنی بکنی از آب کَره بگیرید ما وقتی میگیم تولید اختصاری یعنی از حد اقل ورودی حد اکثر خروجی رو داشته باشه یعنی کارایی بالا جاتون از کارایی رو مدل یخش آوت پوت over این پوت کارایی بالا گیرم مستر منم گیرم خیلی سخت اینا که من دارم میگم اصید کاهش هزینه بی معنی نیست می به نخری شینی نخری شرکت ها هم همینه همین رو میخرن همه و این موارد رو تحت کنترل دارن وحشد ناک هرهان من احساس رو خدا میشه از این هم بخری همین مویش حضیعتم از این هایی که خود احساس بگیده از این است بخری بهشون بدی اونو بگیری از اششون و اون از اششون داره حتی دقیقی میگه دیگه از تو داغو نمیشه احسا باید خورده اون میشه خایره همین این احساس باشه کار میشه نمیدن نمیشه. لوجستیک رو به کاهش خارجه های حمل و نقل. کاهش از های حمل و نقل. شما اگه محصول نهایی تو میخواید به سفط مشتری بفرستی، باید سعی کنیم با حداقل تراک، با حداقل وسایل حمل و نقل بتونی به کل مشتریات خدمات رسانی بکنی خب؟ یعنی شده بگیم آقا هفته یه بار دوبار حمل دارم به سمت مشتری به این صورت بری جلو ولی تو اون یه, ولی تو اون یه بار سرکنی اکثر مشتریات رو کاور کنی این متدولوژی که اکثر شرکت خارجی هم دارن خب؟ <تصفيق> یا راه خوستاد یا راه توضیل به صورتی باشه که مثلا برنامه برید که اول به این مشتری به صورت باید تو میتی حتی تو سوخت همون احنا برسر خب بازاریابی بازاریابی استخدام بازاریاب هرفهی دوستان جمله خیلی ساده است ولی عمق داره. یه بازاریاب حرفه‌ای یا یک فروشنده حرفه‌ای خزینه‌ای تبلیغات رو برای شما کاهش میده. اگه بازاریاب حرفه‌ای نباشه تو یکم تبلیغ کنی و از اینا تبلیغاتت میره بالا. ولی یک فروشنده حرفه‌ای سعی می‌کنه با حد حداقل تبلیغات، حد اکثر فروش رو داشته باشه. سعی کن تعداد نیروهای فروشت رو کاهش بدی. یعنی اگه چهار تا دا فروش داری اینو بکن یه دونه ولی یه, یه باشه اگه پنج تا دا داری بکنیش دو تا ولی دو تا انفیی باشن خب و خدمات پس از فروش افزایش کیفیت جهت کاهش هزینه‌های حملو نوع میخوام. افزایش کیفیت جهت کاهش حزینه های گارانتی دوستان، حزینه ی گارانتی رو شما تو حسابداری خوندید درسته؟ گارانتی پاس این خزینه‌ای که قشنگ داره سود تو می‌گیره از سود خالص داره کم میشه. گارانتی یعنی چی؟ یعنی محصولی که دادی به مشتری مشکل داره و مشتری به تو زنگ می‌زنه و بعددین مشکلش رو حل بکنی. این حل کردن مشکل برای شما حزینه داره. اگر می‌خوای حزینه رو کاهش بدی بر کیفیت تو به گونه افزایش بدی که خزینه گارانتیت کاهش پیدا بکنه بعد از ارسال محصول به مشتری مشتری به تو زنگ نزنه. س کنی زنگ ها رو کاهش بدیم وگه افزایش پیدا می‌کنی هزینه برای سازمان یعنی کیفیت مشکل داره درسته؟ ب بله. جانم قیقا من با همین نکته روبرو شدم خمبار سرش نودیم سپده بودیم به بچه ها بارها و بارها زنگ زدم مجبور شدم باها بارها با چقدر حالا همون نر هزینه های برم اونجا ساعت ها وقت بذاره. بله. درست کنم برایگردونم بیارم اوه. طبیه یا ملیون ها توان زرن. در نتیجه کاهش هزینه که از ترین استراتژی رهبری هزینه اتفاق میفته چند تا استراتیجی شد براتون چند تا شد؟ نه, نه, <تصفح> نه تا نه تا؟ تا؟ یکی، دوتا، ست تا، 5 تا، پنج، شیش، هفت، هشت، نه ده یازده، دوازده تا استراتژی ما توی رهبری هزینه داریم. یعنی دوازده راه داریم دوازده برنامه میتونید داشته باشیم که هزینهای عملیاتی رو تو سازمان کارش بدیم متوجه مزلوم هستیم و در نتیز قیمت محصول تو بیاریم سآلی هست؟ صوت یکس بدازن خب تو, تو بسمت کاهش هزین های همنون که گفتین همه رو جمع کنن با هم بفرستن همه این محصول ها تو ببین همچه یک محرشت بر... آزمان, آزمان, آزمان نیست ها درسته من همین اون خواستم بگم خب چون آره از... یا بر این اعتقادن که ه... ممکنه که اگه یه زمانی بگذره ممکنه اون افکت بدی بذاره رو زهنمون دوستان، یه چیز دقت کنید این موارد تو همه سازمان ها هر دوازدفت استراتیش هفتی که بریست الان شما توی این محسسه استفاده از تجهیزات پیشرفته رفته میدونی چی دارم میگم؟ این اصلا زیاد معنی پیدا نمی کنه. یا مثلا شاید اینجا سیستم ارگاری یا امایه اصلا معنی پیدا نکنه ما نمشیم دوازده راه برای کارش هزینه وجود واستا توی یه ها میتونید بازی مثال دیگه بیان کنه البته <التقال> شما نه نه الان کلاس عجل میکنن. آره جونم. توی زیرساخت ها میتونید یه انسان مرموزتری بزنید. توانمندسازی پرسونل پرسونل اگه توانمندتر باشن بهتر میتونن تصمیم گیری کنن و این انرژی کمتری رو از سازمان میگیره. این یعنی توسعه زیرساخت. استفاده از اینترنت در درون سازمان جهت، کاهش جلسات خود جلسه هزینه داره برای سازمان استفاده از اینترنت جهت، من تو مدیریت خدمت شما گفتم ویچوال تیم تیم های مجازی متوجه هستید این ارتباطات اگه به صورت مجازی باشه جلسات کاهش پیدا میکنه و در نتیجه هزینه جلسات هم کاهش پیدا میکنه اوکی سالی از سال من دیگه ادامه نمیتونم بدم برای اینکه بعد وارد بحث استراتژی تمایز بشه و من دو سال داره کرده شده. متوجه شد تازیاران؟ که ارتباطی دو تا زیرساخت. آره. ناوختگمی. آره آره زیرساخت. اینجا رو ناو ناو بخوامی با افسریش با پرسونل. زیرساخت. زیرساخت. متفاوت شد سوالی هست؟ سوالی هستش؟ آه؟ OK. تو سال ما چه راستی آتیم؟ 100 چندی زیادی. یکشته دوتا. دوتا. ما هفته یکشی کلاس داریم. هفته یکشی میوفته یکی کلاس داریم. هفته سنت میشیم چون بعد. دیگه اگه دو من بگم الان شایدشم از بوری. رو نه. نه نه. خیلی مهمه، من نه. الان نه. نه نه. نه نه. نه نه. نه نه. نه نه. نه نه. نه نه. من هیچ بحثی ندارم هر اون چیزی که اکثریت کلاس تصمیم بگیرن نماینده کلاس هست ارتباط قرار میکنه با مؤسسه من هیچ بحثی ندارم خودم موافقم تا پیشنهادی رو بدم اینو یک یه پیشنهاد مدیریتی برات دارم, دارم. مدر... مدر... مدر... دارم. هیچ وقت تو تصمیم گیری عجله نکن باشه اکشن هم با اجاره نشه. ای چند این سری عذر فرنا قایمه. دو نفرم بایمم. بذار فرک من بدیم بدم. ولی نظر من اینه که این کار نکنیم. بذاریم هفته دیگه هم بیایم سر کلاس. این بقول من تا هفته دیگه تقریبا درس ما تمام میشه. یه جلسه دیگه میمونه جهت جمع بندی. خب؟ موجعت استراتژیک. البته من یه جلسه کامل و در خدمت شما باشم بابت تز پایانیتون. عبیل لازم که بارد درست که اون صحبت بکنیم صحبت کنه، من نظرم کنیم نه کنیم بازم شو شو بازم شو بازم کنیم کلاسه یادم چون اما